با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و موجیان محترم تلیم. این کمان بخش 15 گفتارم را درباره که زندگانی کسلی ادامه میدهم در بخش قبلی سخن به اینجا رسید که کسری کتاب آذری یا زبان باستانی آزربایجان را نوشت و به دنبال آن مجامع علمی و اکادمی کسری را به عضویت این مجامع پذیرفتند در کتاب در نشیگه انگلیسی تایمز اراق چاپ شد به زبان انگلیسی و سپس به عضویت انجمن آسیایی همایونی انجمن جغرافیایی آسیایی انجمن آمریکایی پذیرفته شد در همین جا بخشمون به پایان رسید حالا به ادامه در این مدت بیکاری که کسری در تهران داشت این مطالعات رو میکرد کتاب آزری رو مینوشت بیکار نبود کارهای اضافی زیادی دیگری هم انجام میداد از جمله کارهایی که انجام داد در مورد لحجه های ایرانی که خودش نیم زبان میگه بررسی برداخت. از جمله این نیم زبان ها نیمزبان مازندرانی، شوشتری، گیلکی، تالش، تالشی، کردی، خوزستانی، سمنانی در تمام اینا صحبت کرد، درسی کرد، نوشت همچنین نیمزبانهای دیگری چون سرخی که در خار و همچین نیمزبان ویژه یهودیان همدان رو بررسی کرد و مطالب مفیدی نوشت در مورد این نیمزبان همدان یهودیان همدان یک مطلبی هم اشاره کرده میگه که در باره نیمزبان حمدانی جهودان اشاره میکنن به کلان خودکستویل جهودان همدان که همانا از فرزندان آن دست جهودان که در کلده درس می میبودند و از زمان هخامنشیان به ایران آمده جا گذاشتند ولی آن زبان را به همان حال 2000 سال پیش نگه داشتند که اکنون نیم زبان شمرده میشه خب بنابراین متوجه شدیم که درباره نیم زبان ها هم که کار سنگین و بزرگی بود کسوی کار کرده و از اینجا به پایه زبانشناسی دست یافته یکی از مسائل آن این متعالیات که در کشور ما اتفاق افتاد تقریر سلطنت از سلسله پاجار به سلسله پهلوی بود یک اشاره تاریخی خیلی خلاصه باید عرض بکنم در مجلس پنجم رضا گروهی از نمایندگان که طرفدار رضاخان خان بودند تصمیم داشتند سلسله پاجاریه رو عزل بکنند، به پایین بکشند و به جایش رو خان را به عنوان قضا شاه به قدرت برسونند، به پادشاهی برسونند. در این بین وقایعی اتفاق افتاد از جمله در نهم آبان 1304 ملک بخار در مجلس شورای ملی روز پنجشنبه بود قرار بود پنجشنبه هفتمه هفتم آبان 1304 که مجلس شورای ملی تشکیل شده بود ملک شورای بخار در داخل مجلس سخنرانی کرد بر خلاف و بر علیه پادشاهی رضاخان خب از شانس بعد یکی از جونالیستا مدیر نشیگه نسیت غزوین در اون تاریخ در تهران بوده و برای شنیدن سخنان به مجلس شورای ملی رفته میدانیم که مجلس شورای ملی آزاد بود هر کسی میخواست میتونست بره اونجا بشینه و شرکت کنه ولی اجازه هر زدن نداشتن نیست که که این آخ... نش... به این مدیر نص... نصیت قزوین ضیافه و هیکلش خیلی شبیه به شورای بهار بود بهار هم بر علیه که رضا حرف زد پهلوان یزدی یکی از قاتلان رضاخانی در جلوی مجلس شورای ملی منتظره که اون کسی که بر بل... علیه رضا گفته بکنه وقتی ملک و شوعرای بهار مینویسه که من پس از سخنرانی رفتم در اتاقم نشستم سیگار رشن کردم ولی این بدبخت مدیر نصیحت غزوین وقتی از در میآید بیرون و تمام هیکلش با عمامه و عباش و اندامش شبیه ملک وشوعرای بهاره قاتل این رو به جای ملک و, و در همون جا این بود که من در اینجا فقط اشاره کردم تا شما دوستان عزیز این وقایع رو هم کسانی که احتمالاً در جریانش نیستن بتونن. در روز دیگه در نهم آبان روز شنبه ایبار پنج نفر از مشروط سازان من گفتم از آمشونو. از افرادی که به خودشون جرأت میدادن به خودشون اجازه می‌دادن، از زر وژدانی نماینده مجلس بودند و لازم بود حرفشون را بزنند در مجلس پنجم آن روز بر علیه رضاخان جبهگیری کردم که عبارت بود از مدرس مصدق تقییزاده یحیی دولت آبادی و حسین لا در همون نه آبان سلسله غاجار اعضی شد ماه آینده پونزده آزار رضاخان به نام رزاشاب سلطنان نشست خب، میگه که من درگیر گرفتاری ها بودم که صدای ترکیدن بمب را در توپ رو در حقیقت در سطح تهران شنیدم میگه وحشت زده رفتم بیرون دیدم که بله یک کار بزرگی انجام گرفته سلسله غاجاری سقوط کرده و این رو به اصلا شادی است که نظامیان اینها رو ترکندن پرتاب کردن تصادفاً کسبی در کودتای های 1299 نیست سه کودتا به همین نفع درگیر مطالعات خودش بود و در آنجا نیز وقتی کودتا شد و رضاخان وارد تهران شد نظامیان توپ درکودان و با صدای همین توپ کسوی متوجه شده بود که تهران اشغال شده در ایران کودتا شده این رو تکرار کردم در اینکه بدونین که تا چه اندازه در درگیر مطالعات علمش بود. دیدم از علمی بود نیم از مطالعات علمی کسبی حال برمیگردیم به کارهای اداری که کسوی در این تاریخ انجام داد با وجود اینکه که خودش گفته و خودشم می نمیسه در کتابش که من تصمیم داشتم به شهرستان ها نرم ولی وادارش می به مأموریت دماوند بره خاطر من باشه یک بار دیگه در دماوند بوده کسوی مشکل اینجا بوده که حضورتون از کنم که امین سلح دماوند در عدلیگه به نام میزو علیاها با رئیسش درگیر شده بوده و اینا با هم به مرکز رئیس رو صاحب حق دونسته و این آقای امین صلح رو تنبیه کرده و احزار کرده به تهران و این عنوان اعتراض که خودش رو صاحب حق میدونست نرفته وزیر عدلی کسوی رو دعوت میکنه و بعد ازش میخواد که بره دماغند و این مشکل رو حل کنه یادمون باشد که هر کجا وزارت عدلی مشکل داشت به کسوی مراجعه میکردن و اینم یکی از مراجعات وزارت عدلی بود کستوی بلا میشه میره یکی دو روز اونجا میمونه با همین امین سل صحبت میکنه و او را مجاب میکنه که در حال باید برگرده تهران ور داره با خودش می آره که از چی رسیدیم همه جا بسته بود می بره خونه وزیر عطلیه میگه به اون سپردم گفتم این آقای به صلاح میزو من به شما می ولی از قول گرفتم که تنبیه نکنم اینا. این هم یکی از کارهایی بود که کس انجام داد. از این تاریخ به بعد ما میبینیم که کسری در عدیه به مقامات بالاتری میرسه و از این تاریخ به بعد رحضهای فراوانی در این, در این مورد خواهیم داشت کسری قدرت اداری قدرت سیاسی به دست میگیره و شروع میکنه به مبارزات اجتماعیش مبارزه با فساد مبارزه با دروغ مبارزه با رشن خاری مبارزه با آدم و شروع میکنی کارها کردن که یکی از دوران قابل توجه کسمی به شمار میشه در یکی از در اواخر سال 1304 که حالا رزاخان شده شاه این آقای شاه میدانیم که اصلاحاتی انجام می داد. یکی از اصلاحات مهمی که انجام داد و واقعا اصلاح معتبری بود مبارزه با ملایان بود بنابراین ابتدا یا چهار اداره بازرس عالی می تا که به کارهای عدیه دقیقتر رسیده بشه این چهار اداره هر کدوم یک قاضی رئیس بود که کستوی را هم یکی از ادارات رئیس به عنوان بازرس عالی رئیس یکی از این ادارات می کنن. بنابراین کستوی شد بازرس عالی در وزارت عدیه این در اواخر سال 1304 در اوایل سال 1305 نیست یک پست خیلی مهمی در دیگه برقرار میکنن این پست دادگاه انتظامی نام داره چهار تا اداره است این دادگاه انتظامی وظیفش محاکمه غزاته خب یه جایی ننوشته ولی بنده خودم نتیجه گرفتم که تا اون تاریخ غزات همش مرشتهد بودم، ملا بودن که مشروطیت قانون اساسی مشروطیت ادلیه را مستقل معین کرد و یادمون باشه که اصلا انقلاب مشروطیت قبلا در چارچوبه ادالت خانه انجام شد مردم ادالت میخواستند مشروطیت انجام شد سه قواهی مجزا تشکیل شد قضایه مغننه اجراعیه. ولی از همون شروعش ملایان نداشتن این قویه مستقل کار استقلال خودش انجام بگیره مثل همون سابق در اختیار گرفتن یعنی محاکم شرعی همه کاره بودن تا این زمان که رزاخان میشه رزاشا رزاشا تصمیم میگیره عرض کردم این قسمت از مطالب رو بنده نتیجه خودمه رضا شاه تصمیم میگیره که ملایان رو از لاقل ظاهرشون رو از عدلیه بذاری کنار و اینا رو بکشه پای محاکمه وقتی کاری میکنن و همین دلیل این چهار اداره دادگاه انتظامی رو برقرار کردند که یکی از رئیساش کسبی میشه اوفال از اینکه کسروی وقتی در یک مقامی هست براش فرقی نمیکنه فاسد که با فساد مبارزه میکنه و متاسفانه فاسدان اکثرشون هم مقام بالایی دارند در مرتبه خیلی فوق العاده ای هستند کسانی هستند که قدرت دارن وقتی فساد میکنن که کسی نمیکنه نمیکنه در مقابلشون بایسته ولی این کسی همیش که باید نیسته کسی همی می گه نخست رقم نخص و بعد پادشاهی رضاشاه هنوز در عدلیه فساد فراوان بود رشنگیری فراوان بود حق کشی فراوان بود از همون روزی که رسید شروع کرد با فساد و با فاسدان مبارزه کردن یکی از مسائلی که خودش مبابه بیان کرده می نویسد که میزا محمود نامی که بازپرس مشهد بود و با کیسه پر از و با کیسه پر از آنجا بازگشته بود چهار پرونده فساد می داشت یکی از این پرونده ها بود که دزد به نامی را که پس از چند گاه دنبال کردن دستگیر گردانیده و به عدلیه آورده بود این پاسپورت شبانه او را به شهربانی نفرستاده و در عدلیه آزاد گذاشته بود عین سخنان کسبیه و او یعنی این دوزد کفش های سرایدار عدلیه را هم دزدیده و فرار کرده بود و گمانه بسیار میرفت که این از این دوز رشوه گرفته میگه این گرفته بودن قرار بود که یکی از این روزها محاکمش بشه سه نفر از این گذاتی که همین دستگاه انتظامی رو دادگاه انتظامی رو ریاست میکردن سه نفرشون از جمله که از قرار میشه این محاکمه میکنن. یا میگه که ما ستایی تصمیم گرفتیم که این آدم رو باید از یه اخراج کنیم ولی نشد چرا نشد میگه که همان روز دیدیم که معاون عدیه که کفیل وزارت خانه نیز بود همین میزا محمود اینکه می که فاسده دزدی کرده از دوزد رشو گرفته میزا محمود را پشت سر خود انداخته به دادگاه در آمد و سر پا رو به من کرد و با نیم خنده گفت آقای کسوی به این میزا محمود خان کاری داده ایم و باید برود و منتظر تمام شدن پرونده هاست آنها را یعنی پرونده ها را زودتر تمام کنید تا این به کارش برسد محافظ از اینکه ما حاضر نیست باج بده به مسئولان در سخنان بعدی هم در های آیندهم خواهیم گفت که با چه کسانی افتاد در افتاد کسوی؟ کسوی ادامه میده که از فهوای کلام کفیل عدیه پیدا بود که نصف پولهای دزدی شده به وصله میزا محمود را خودش گرفته ولی با قاطعیت به او جواب میدهد ولی باید به او کاری داده نشود یعنی اخراج بشه کفیل که این جمله رو می شنوه کرده و بر از که کسامی بر میگرد که محاکمه شروع میشه اون دو تا قاضی دیگری که قرار بود دست جمعی تصمیم گرفته بودند که این فاسد رو خونصور فاسد رو از اون اخراج بکنن آنها خود که به یک درجه تنزیل مقام حکم بیدن و بدیم وسیله یک آدم فاسد رو بدون تنبیه می سرنند. خب در این تاریخ یک مطلبی اتفاق داده باز به نام ادلیه نبین ارز کردم رزاخان کارهای اصلاحات خودش رو انجام داده خیلی کارهای اصلاحی کرده اینسا یکی از این کارها نوین هر چندی که به عنوان اولی از این نوین انتقادات فراوانی کرده از همون خود داور ولی خب ظاهر ادلیه به طور کلی عوض شد قدرت ملایان در ادلیه پایین اومد و قانونی که در اونجا برقرار شد درست قانون اسلامی هم بود یه مقداری هم از قوانین کشورهای پیشرفته در این عدلیه به اجرا گذاشته شد مسئله اینجوریه که در 19 تیر ماه 1305 مهنس ششم افتتار شد از کردم که در سال 1304 مجلس پنجم رزاخان رو به پاتراهی رسند و بعد تحتیلی مهنس پنجم انتخابات رو برای مجلس ششم و در این مجلس ششم خیلی از افرادی که می مقابل رزاخان و رزاشاه ایستاده و مخالفت بکنن با زیاد روی بی طوری رزاشاه و به استدار انتخابات رو انجام داد که تمام اختیار در دست خودش بود و افرادی رو انتخاب کرد که به نفع او زیر دستور او انجام وظیفه بکنن. حال یکی از کسانی که مخالف بود در مجلس بود، همین شاعر معروفی است که در مجلس بود ولی اکثریت مجلس در خدمت رزا بود در 19 بله اون شاعری که مخالف رزا شاه بود فراخی یزدی بود من در اون لحظه به کمی رزا گرفتاری ذهنی برام بیش ماد. پس از افتتاح مجلس ششم در 19 تیر ماه 1305 تصمیم دولت مصطفی الممالک سومین کابینه خودش رو برقرار کرده به دستور رضاخان قرار بر عام عدلیه قدیم رو بریزن به هم یه عقلیه جدیدی رو برقرار کنم. و به همین دلیل در روز هجده بهمن 1305 سه نفر از اعضای نمایندگی یعنی نماینده مجلس به نام های محمد تدین اماد و فاطمی و علی داور از نمایندگی دادند و همان روز آمدن عضو کابینه مستوفی المالک شدند و در این کابینه داور به عنوان وزیر عدلیه انتخاب کردید فردای همان روز نوزده بهمن اطهی زیادی از غزات و مقامات سنتی رو از کار منفصل کردم به گمان من تمام ملایان به گمانم نمیتونم ملایان رو هم احتمالا از کار منفصل کردم و روز بعد بیستم بهمن ملازمی فرمایید که چه توند عمل میشه پشت سرهم عمل میشه روز بعد بیستم بهمن ماه هزار کلیه تشکیلات و اداری وزارت عدلیه را منحل ساختند یک هفته بعد، 27 بهمن، یه تقدیم لایحه ای از مجلس اختیارات لازم جهت اصلاح قوانین و تشکیلات وزارت عدلیه را تقاضا نمودند و همون روز مجلس این اختیارات رو به داووردت <coughs> سپس با پشتکار عجیب قابل توجه داور تغییر کادر ادلیه شروع شد و عدلیگه قدیم از بین رفت و عدلیگه نرین جایگزین شد به طوری که در کمتر از سه هفته در شانزده اسفونند در تغییر انحلال عدلیگه در مرکز عدلیگه ولایات نیز حل شد و رای امور یک محکمه صلح نامحدود و یک صلح محدود و دو شعوبه استنتاق در مرکز تشکیل شد و 21 یک هزار دصیه مووقه را تحت نظر و مداقع قرار دادند دو ماه و هشت روز پس از عقس اختیارات به وسیله مجلس وزارت عدلیه با تشکیلات جدیدی آماده کار بود پنکم اردیبشت 1306 آماده کار بود و از روز بیستم همان ماه دو هفته بعد ادهی از محاکم شروع به کار کردند. یعنی عدلی عدلی نوین برقرار شد اولین کار عدلیگه حذف لباس روحانیت و ظاهر قزات لباس های مناسب و پیش بود بنده بخش پانزدهم ارایزم را هم در این ساعت به پایان میرesam در این ساعت به پایان میرسانم. امیدوارم که در فرصت بعدی بتوانیم زندگانی کسبی رو ادامه بدهیم روز به شما خوش